خطبه دویست و بیست و چهار به فدایت مولا چقدر غریبی چقدر مظلومی چقدر تاریخ نسبت به تو ظلم کرده تو رو نشناخته عزیزان برادران خواهران، به خدا قسم با دل سوخته میگم به خدا راست میگم شما اگه فوتبال دوست داشته باشید یه قهرمان فوتبال عاشقش میشید گاهی عکسش هم و لباسا میچسبونید به تنتون میکنید اگه کشتیگیر باشید تو دنیای کشتی یک کشتیگیر مثلا قهرمانی بشه شاعر باشید یه شاعر بر جسته ای رو نقاش باشید یا هنرمند نقاشیقه و و آقا در ارزش‌های والای انسانی بهتر از علی دارید به من نشون بدید بدید من برم در خونش اگه بهتر سراغ ندارید چرا نمیای در خانه این علی و در بزنید بگید هر کس به کسی نازد من هم به علی نازد علی جون خدا رو شکر میکنم که تونستم با تو این مقدار آشنا شوم و بیام در خانه تو و با تمام وجودم بگم من اون ویرانه هستم که تو گنج عشق و محبتت رو در این ویران جادادی گنجت را ویرانم تو را پروانم تو را دیوانه علی جون اینو می بالم چون هرچه می گردم در این عالم ارزشمندی های انسانی از و پیدا نمی کنم خودت همسرت بچه هایت نوه نتیجه بیتت همه انسان و انسانساز اما چه بکنم که انسان ها از این انسان ها جدا شدن؟ والله لئن أبيت على هسك اسعدان مسحدا أو أجر في الأقلال مصفتا أحب إلي من ألقى الله و رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد و لشيء من الحطام. میگه به خدا قسم که من علی اگر منو روی خار مغیلان بیابان بکشن منو رو تیغ عبور بدن بدن برهنه رو خار آب خابانند این عذاب ها رو برای من والله برای من محبوب تر است از این ان الله فردای قیامت خدا را ملاقات کنم و رسوله او رسولش را ملاقات کنم یوم روز قیامت ظالما لبعض العباد که به بعضی از بندگان خدا ظلم کرده باشم در جای دیگه میگه به اندازه پوست جوی از دهن ای به زور در آورده باشه.